اللهم صل على که بود درباره اون چیاتس کتاب و کلماتی که حضرات اخباری ها در این جهت گفتن دواهر سنن منصوبهی در رسول الله صلی الله علیه و آله و دیدن کل روایاتی رو که امسال صفحه به بساره متقه بودن همه رو سهلن و محنن بررسی کردیم خب ما موظم این روایات به لحاظ تنمی اشکار داریم و به لحاظ دلالت هم از کردیم در این حدود هشتا روایتی که ایشان در این واقع دو سه تا شاید به درده این مسئله بخوره برگیه شاعتی و درادتی به اینجه هر نداشته که اون دو سه تا روایت هم برداشت خان و منظمونی داشته مثل منظر و قرآن و نظر و منظر و یک آقایت هم یعنی برغازه و یک کلام از منظم در احتجاج بود و یکی بسار روایتی گیشه همه اینها ها مشکل سندگی داشته و مزارم دیگه که مشکل درادیت در تمام این بود یعنی به عبارت دیگر روایت واحدهی که سریع در این معناه باشه مثلا نهی مرده موسیقی بگرد که آقاهای افرسان در میکنند تمس این تمسط درست نیست به عبارت اینجوری که مطلوبه ما همیشه مطلوبه بگیم و بعد موجود جدان موجود داری یه روایتی به این مزمون که این محل سلام ببردن آقا این فقاری ای افرامه در استنبالات تفریق و برآن مراجعه می کنن این قلطه نباید برآن موجود کرد این به این اون ما در یک دانه این روایتی باب نبود. و به فرمانه مثلا راه صحیحه که به فرد به در فرد اینه که ببینید ما در تثیرش گفتیم اونو آیات احکام رو این طور ما باید کنید حققتا در میان کل این روایاتی که خونده شد چنین مضمونی وجود نداشت این به این سراحت و به این روشنی وجود نداشت لذا انصاف قضیه این که استدلال به این مجموعی روایات برای این مسئله، بسیار مهم که اعتماد به مصورت و در باب فرق باشه خیلی انسان همیور از علمیت و واقعی هم. یه بحث کهربی اگر بکنیم اون این که عرض کردن در اول بحث نصلا داده شده به بعد در هشتیه در کتاب یا مثلا به بعد یه مونیکره مثلا خوده نکره قرآن هستن این مثلا قرآن یک کلام مشبهی مشبهشه یا نسبت داده شده که قرآن همشه از قبیل همون تواته صغره الاخلامی اصلا کلن مفهوم نیست در کتاب حسولی نهر سنت آمده و متنابزات داره و کلامیست که به هیچنج مفهوم نیست خب این کلام رو به ما میدانیم که خیلی باطله انساقاً مرد کلام اخباری ها هم نهایت چیزی شبیه اینه اینه هست اون کلام با این خیلی متقاربه نهایت اینکه اینها میگن اده از آیات در تفسیر اده اده اتواره اونا رو برگو میگون از و با قطع نظر از خود آیات مبارکی قرآن نهاده قرآن اده اده اده اده اده و بیان عربی مبین بسلت آیات و اکتونه الله و نزوله احسان حدیث کتابا متشاهده خود توصیل قرآن در قرآن خودش کافیه احتیاج روایات نه مضابقا به روایات کثیره که حتیم متواصر در وجود قرآن در همه شعون زندگی و واقعا مروض از با در نظر گرفتن خاتمیت گرفتن این شریعت مقدسه چاره ای یعنی تنها راهی که میتواند تزمین بکنه خاتمیت اون شمول و عموم و سریان و قرآن برای هر زمانه بله خاتمیت رو برای تمام افراد بشر در تمام کره زمین در تمام زمانها ها تا روز قیامت تزمین بکنه و انصافش که قبول بکنیم اخباری ها با ترگ این مسئله یه روحی مهم نه از شریعت مقدسه و زیر سال بردن یه مهم در فرهنگ انسانی اصولت در تعقل بشری در عنوم انسانی در مجموعه معارف بشری رو زیر سوال بردن انصافاً این هدف رو کنشان مقدس رو به اما انصافا این ترهیر رو که مطرح به این صورت که آیات قرآن رو از هنده سفاد خارج رو کنند با و زبوری که داره و معارف خوغل آدنجیبی که هست که حتی بعض از بزرگان محتفظ حقیقت قرآن حتی بر رسول الله هم ششف نشده چون این مثلا تنظر علم حق قرآن رویس که علم حق غیر از ذات حق کسی بود و حالان این مقامات این طرف و با این حرف های که مثلا ما سردرد نمیاریم و نمیاری, و نمیاری و نرمی شد از بعضی اخواری از ما گروه و آنها که تفسیر بیار انصافش تیری دور از آبادی یعنی انصافن نه فقط یک بحث علمی نیست به یک جناحیت فرنگیان و این راهی رو که رفتن راه بسیار غیر سهی و باطل مهد انصافن بله این که مجموعاً خدا آیات مبارکات رو باید با رجوع وحلبه تفسیر کن این بیای بحثش نیست اصولا الان لاحقا نسبت به ما و نسبت وقت با که مثل هزار سال سال هزار بودن و نسبت به ما در این مدت هزار سال هزار سال این بعد همه روایات و همیتره ما تا حامین و فلاسفه و راجع به قرآن صحبت یاد شده نه کم شده ما همه هرچی راجع به قرآن گفته شده یا هر مفسری گفته شده یا افرادی که اصولا از نظر ما به لحاظی مختلف مشکل دارن مثلا فرسان اکرمه از آرار اکرمه هم یکی جز بوده افرادی بودن که مورد درمی ما مومین در افرادی بودن که منحرف بودن افرادی بودن که علم نداشتن اطلاعات کافی نزداشت امسا پسید نمیخلی بگیم به بی این به سه شرکت رویه این رو باز بکنیم که هر کسی بخواست برای خودش هم نظر راجع به اولان بگیم و بعدش هم در نظر بگیم اصولا ما وقتی در فر تنصف به آیه یا به روایتی میکنیم همینطور که حال شده محیاب وصول به حد ظهوره این در فر بخشی که الان به ما میشه تا به ظهور نرسه حجت تمام نمیشه این فیوлоги این آیه اجمال داره مثلا و این حضرت رکم بنیهتون ارام اللهم خب ما اجمال داره در اصول هم گفتن اگر مؤخص مؤمن باشه این آیه این سرایان به عام بیان میکنه هم مشمول میشه نه برد بگی موزنان آمان مجمن میشه لذا به اطلاق آقا بگی موزنان آم تمثب نمی کنه چون اجمال مخصص یسری به آم آمان میشه این اینطور نیست که مثلا اینات یاد کردن در باب ف تمثب بکنیم این راه بوده که اهل سنت رفتن یه ادهه از علماء ما مثل مرموم صاحب قوانین با عنوان حجیت مطلق زن رفتند این سوزیهاتش از که مرموم صاحب قوانین آخر سه تیجیگیری میکنه که مثلا ذواهر قرآن را از باب حجیت مطلق زن قبول میخونه این این تفسیر تفسیر دوسری نیست تفسیر اخباری ها که ما بیه این شریعت مقدسه رو اون مواردی که تفسیر قرآن و تبین آیات شده قبول کنیم بقیه احتیاط بکنیم. کنیم تفسیر هم تفسیر ما این توضیحات رو کرارن عرض کردیم احتیاط اصولا از سنخه دعات نفسه یعنی احتیاط است که ما واقع رو نمیدونیم یک صورت رو ما درست کنیم مثلا نمیدونیم این قطعه اون تو این دیوان افتاده تو اون دیوان این واقع رو نمیداریم ما یه وقت صورت نفسی ادعا میکنیم می‌گیم هم تو این افساد هم اون. ولی وقتی عمل کردین در اختیار هر دو طرف ادعایی هرکیش یکیش واقعیه یک واقع داریم یکی ابداع برنیم. یک ادعا یک اثر خون افساد ما دو تا تو یه انا افساد چون تشخیص ندارین می‌گیم این انا هم توش افساد و اون انا هم افساد. این ادعای نفسه انصاف اینه که اخباری ها با این تفسیر رو که ارائه کردن این شدیعتی که پا شدیعت خاطره داشته یک تفسیر بسیار ضعیف بسیار ضعیف و باطلیه انصافه که ما این همه آیات این همه روایات این همه خوندهی که علموان خورده تا این نیراث ها رو ما برای سن بگیم آتا مجمعت شد برگردیم به احتیاط به ادعات نفس هیچی ما درد نمی که بر یا حرف مردم میزای قومی که به معنایی باز همونم نزدی که اینه. یه ما اینا رو قبولی میکنیم از باب زن مطلب این هم درست نیست نه این کلام محضر قومی درسته که تفسیر نهاییشون برگردیم به زن مطلب یا تفسیر اخباری های که برگردیم به زن این دو ساقید از این که حالا از نظر علمی ضعیفن اینها واقعا یک نوع به اصطلاح سبق شمردن زحمات و های بسیار فراوان که علما و علماء السلام زحمت زحمتیشن خود رسول الله خود حقاید قرآنی این حقاید قرآنی تا حد, تنظر... حد زمه مطلق تن... تنظر دادن این ساکن کار فی نفسه کار درستی میتونه کار ثوابی میتونه. و نذاب به ذهن ما میاد به طور کلی حالا با قطع نظر از خصوصی ها کل این ترک به این صورت ما شریعت خاتمه را معنا بکنیم که به آیاتی که در غیرش شخصی وارد شده قبول کنیم بقیه را هم احتیاط بکنیم یا به همون مرزا زواهر آیات وارد را عمل بکنیم و از باب زن محلق و شریعت خاتمه که میخواد برای نجات بشریت تا روز بیامد باشه معنیش بکنیم بر زن اونم در خود این قرآن فرمود اندر لا لایقونی من الحق شیعه در خود قرآن اینه کلش مبنی بکنیم بر زنی که می، اندر حق شیعه به ذهن ما میاد این دو تفسیر هر دوش تفسیر بسیار ناخصی باشه مراجعه با آیات قرآنی در مجموعه معارف دینی این قد فراوانه که احتیاط میاد یک مورد دو مورد و سه مورد هم از و همینطور که علمای متأخر ما مثل مرموم آقای و دیگران امده روایات احل مخباری رو به دو روایت برگرد یکی محتامات شابه یکی هم تفسیر برد شاید مثلا از این روایت دیگران دارن که شاید واضح که روش بزردن. و توضیحاتش رو ما اعرض کردیم که اولا الان معروف اینه که محکم و متشابه و صفت خدا آیه میگن مثلا میگن یعنی این آیه محکم این آیه متشابه از ما باشیم این توضیحات رو از کردیم از صفت آیه میگیرن متشابه هم به معنای مجمل میگن این یک تفسیری که به ذهن میاد افتدار و تو وقت ما هم داره این نقی حدیثینا محکم که محکم و قرآن متشابه, متشابه هم متشابه این ذهنیت افتداری پس متشابه یعنی کلام مجمع و توضیحه هم رو از کردیم برای خود این آیه تفاصیر متعددی شاید که شاد منحیت منون 225 تفصیح اگه همه رو با هم بریدیم در میان از کردیم در محل خودش قبل از زود در استدلال اولا ظاهر آیه مبارکه این نیست که یک آیه واحد محکمه ای یک آیه واحد متشابه ظاهرش این نیست این ممکن و متشابه وست خود کتاب نه وست آیات یعنی اصولاً این کتاب کریم این طوریه که بعضی از آیات رو میشه به تنهاییش تمسخ کرد بعضی از آیات رو اگر تمسخ ممکنه یک معنی غیر صدیبه و انسان تربیلن رو در بیاره و لذا قول داری هم در علیه کتاب منوه آیات و محکمات و اخر و متشابهات نه مراد یه آیه واحد متشابه باشه مراد مجموعه آیاته چون از کردیم این آیه مباهی در مناظری با نصارای نجران ناظر شده در مباهی که بعد منتعی شده مبارکه. این ظاهرم به لذا آیه داره و لذا اساس هم تقسیم آیات کتاب نیست اساس نحوه استفاده از کتابی نحوی برخورد با کتابه. یعنی شما نباید با آیات کتاب برخورد جدایی بکنیم به اصلاح برخورد برهانی باید بشه مثلا ممکن بود مسیحی ها که قالب تسکیس میکنن به آیه الله مهد تماسیت نمیکنن خب چون در نکر تسکیس این که بشن اما ممکن بود بایه با مثلا وجوه و ناظره الارد با ها میگم خب از این آیه محلوب میشه که انسان میتونه به رب بشه ببینه پس رد جسمی رب, جسم. رب اگر بنابشه جسم باشه عیسی مسیح. چون کسی غیر از عیسی مسیح تقرد تک یعنی از این آیه ممکن بود برای مقاصد فاسد خودشون استفاده کن برزان قرآن فرامل لدی نفی غلوب همزهی غل ببینید فا این بیان واقعی تقس... تقسیم آیات اینه فرامل لدی نفی غلوب همزهی غل فیرتبه اون ما پشابنه من ابتقاء الفتنه و ابتقاء تعبیله اینا برای اینکه مسلمان ها رو برگذارن فتنه معنی دگراندیشی به اصطلاح برگرداندن میخواید مسلمان ها رو از دیلشون برگردنن. با این تعلیلاتی که در قلبشون زید و انتراق و کجی هست در کجرها هستن این ها به این آیات پس ما باشیم مظاهر ظاهر آیه مبارکه این معناش نیست که یک آیه واحد متشابه یعنی مجمله این معناش نیست که شما در قرآن بعضی از آیات رو به تنهایی می توانید تفسیر بود معنا بکنید به شمس کنید بعضی از آیات رو باید در مجموعه نگاه بکنید این که مثلا الارده ها ناظره این معنیش که خدا جسم لا صدوه کل افصال و حیلوه کل افصال به الارده آفره آیاته این مراد جسمی هم نیست مراد الارده ها ناظره رحمت الارده ها ناظره الارده یه آیه دیگه هم هست حالا آیه شوزه هم نیست اگر کامپیوتر هست یه نورون الارب به هر صبح و کفار و ماکام و یعملون اون چی کفار انجام دادن. آیا به اصاب گریبانگی دوشون شد آیا پوشونگه شدن صبح ببنای لباس یعنی آیا جزای اعماله خب امکان داره مراد این باشه و مراد ممکن است رحمت الله باشه و خیلی نظاله پس ما اگر باشیم مظاهر این آیه مبارکه یک خود این آیه مبارکه نباید متشابه باشه نباید مجمل باشه این که 10 تا 20 تا 20 تا 20 تا 8 تا 9 تا معنی برای آیه مبارکه بکنیم این با سیاه آیه نمیسازه با مساق آیه نمیسازه این آیه در مناظره با نساره چطور اینسان تو مقام مناظره بیاد ایک آیه مجمع، کلام مجمل که خودش محفوم نباشه الان مثلا اون روایتی که میهند که حدیثنا محکم و تشابه هست این خطاب به شیعه و این که شما معاذب باشین احادیث ما محکم و تشابه داره اما اون آیه وارده که خطاب به مسیحی هاست نه خطاب به مسلمی متن آیه واضح مثلا میگه ما به محکم عمل میکنیم و مشابه نوع ملان احمد به این میخوره این این که اینا توجیهشو نشیادن تعجب از, از علمای ما و علمای اهل سنت و حتی مثل محقای علامه اصلا توجه نظریه که آیه مخاطبش مسیحیه نه مسلمان است آیه تو این مقام نیست که بگه شما تسلیم بشین در مقابل متجاوه اصلا توی این مقام نیست این خط خب میگید از حقیق در قرآن کلی جایی که قرآن رو به عنوان کلی در نظر گرفته شده توصیف به احکام شده کتابون احکمت آیات و به عنوان کتاب که مجموعه است جایی که به عنوان نزول در نظر گرفته شده به متشابه تفسیر شده الله نزل احسن الهدیث خیلی تأویر زیباست حدیث یعنی در مناسبت های متعدد این قرآن میاد، این نظره یعنی تدریجم و در مناسبت ها لیکن این که مثلا از زمان اول مبعث تا وقتی رهگر به قمبر 23 سال و تدریجم به عنوان حدیث و گفتار به مناسبت ها لیکن کتاب ظاهرش احادیث متفرق این از صحبت هایی سی در زمان های متعدد شده در تیه 23 سال شده اما در باطن یک کتاب واحده الله نزله اصلا حدیث خیلی عزیب اول نزله اصلا کتاب متشابه متشابهه. یعنی این احادیثی که در این سخنانی که در تیه 23 سال نازل میشه اینا مجموعاً یک کتاب متشابه یعنی چی؟ یعنی نگاه نکن 23 سال ما بین المبنه و منتحاب فاصل هست. بعضن. به از رضا به یونوس فرموند این کلام اولنا یشت و کلام آخرنا حالا از رضا ها دو سال دیلیست هست این از زمان امیرونی تا زمان ما نگاه نکن دیلیست ساله اما اون بابا هم ارتباط داره. این کلام اولنا یشت و کلام آخرنا و این کلام آخرنا یشت و کلام اولنا و ان الله لا يغفر صحيحا سوى ذاك الذي كشاف الجزئيه بولنده و ان الله لا يقول الا قول حاله اولن رد بنا و سنه نبينا تسهيل در قران كريم یک جا قران کلا محکم توصیف شده جایی که کتاب کتابون که شده بود یک چیز کلا متشابه است فقط توصیف شده اون جایی که نظر به نزول تدریجی قران که در عین موضوع تدریجی حریفت وقت مهدانی داره کتاب است و این کتاب اون از اول تا آخر بحثت با هم تشابه داره کتاب متشابه یک جا هم به هر دو توصیف شده که این آخر احتمالا منابرا معروف در سال دهم بعد از هجت و که مباهله راشه در همین ایام تنویم هست این ایام نبوده 24 و 25. بعد از اینکه به همول به رسیدن پس خیال خیاله هم خیاله بودید دوازده از مکره ها بین مکره و ده در روزه 22 هم یا 23 هم واضحه مدینه شدن که اونجا با نصابه نجام مباهله کردن بخصیف شده سال نهم، هم بیشتر این سال، سال ده همه هجیه عملی که راجع به این مطلب تعمال بفرمید پس بنابرای اگر ما باشیم نه اینکه یک آیه واحد محکنه. یک آیه واحده متشابهه یعنی مجمن این الان معنیز که الان ما میکنید ما باشیم اصلا این ناظره به آیه واحده نیست ناظره به مجموعه کتابه من ارز کردن همیشه این نقطه ایست فوق العاده مهم ما باید در هر کلام اون مساب اصلی کلام رو درک رو کنیم اون خیلی مهمه؟ یعنی از کلام سوقش به مساق با قاف اصلا این سوق کلام برای چیه؟ اون هدف اصلی به استعماله یعنی مخاطب اصلی کلام کیه؟ ما باید دیمیم اصلا کلام اون لبش مال چیه؟ این خیلی مسئله مهمه آیا این آیه مبارکه نازره به تقسیم آیات کتابه؟ دقیق بکنیم یا یعنی این آیه مبارکه در مقام واضحه که مسیحی هاستن بزرگان از کردن شواهدی که در تاریخ آمده ظاهرا در رتفه کاردینال به اصطلاح موانگوز بودن یعنی بزرگترین مسیحیان رتبه مسیحی در عالم به سالم مسیحی در جنوب عربستان در نجران در جنوب منطقه حجاز بین حجاز و یمن رسول تحتبیه شده در خصوص تاریخ سید و عاقب الان من دائما در همان اسکندریان دروسی سید و عاقب در اصطلاح اون زمان کشیشی به مقامات معنوی الان قبل از رتبه ها کاردینال دید به نظر میاد از این که معلوم میشه به کام اعظم های فلان در اونجا احتمالاً چیزی نزدیک به شبهه کاردینال اونجا بوده یعنی بزرگترین مقامات روحانی یمن یعنی نرز و هجاز که ساکن نجران بودن اینها آمانن برای مباحثه با رسول الله ارز کردم گفته شده سوره آل امران کلن تو این جریان وارد شده گفته شده از آیه اول تا هشتاد وارد شده گفته شده از آیه اول تا چهلم یک جان شده دقیقا پس رو این تصور کلام رو این یک کلام نیست که خداوند به پیغمبر اکرم مخاطباً برای مسیحیان و لذاب قبل از این انزال تورات و انجیل اول تورات و انجیل، از کرد در این مناظره ای که فی... در این آیاتی که آمده اون روح کلی بحث رو یه درجهام اصر کردم با اینکه در آیات سابق خود پیغمبر فرمودند موشاً درباره شده یاتی من بعد اسمه احمد در این مناظره که امبر بینیم مطلب هم از سکر کردن قیلی هم عشیبه اسم من در انجیل موجود هر در خود و این احتمالی که من میدم ولی علم و شاید مناقش انگیز بوده مثلا من امتونم اون نسخه انجیل ما قبول نداره توش اسم احمد اون نسخه مصححه. چون یکی از دوستان ما هم احمدی که در تورا این لحظی که شیلی دان کتابان شیا خیلی فرقش کمه کتابتش بین محمد و بین کثیر به لغوی عبری ولی charm ممکن است شما بگن آ شما این نسخه رو ببینید این نسخه قابل اعتماد ما نیست پس اگر تعمل رو خیلی لطیف اگر روزی وقت بکنید از آیه اول سوره سوعا چون بحث در نوبت نبوت پیغمبر دارن دیگه در مورد عیسی عذرا و نبوت در این آیات فجای تمسی که به اون مطلب پیغمبر شروع بکنه اول حقیقت توحید حقیقت نبوزد اصلا از این رو میشه که اگر اون حقایبه الانی روشن شد خود به خود روشن میشه ایشان پیغمبر اصلا صور کلام اینجوریه یعنی نحره کلام کلام نیست یک نوع محاجر است با بزرگت این مقامات در... بعد بزرگت این آقا به حساب روم یا واتیکان بایست دار این ما به حساب شبه جزیره عرب برد, برد. نجد و سه منطقه بوده حجاز و نجد و تحامل بعد تا یمن به حساب این مناطق در این شبه جزیره عرب به حساب این منطقه خب واقعا توی این جزیره میگفتن جزیره عرب. به حساب این مرحله بزرگ این مقاماتشون بود خداوند و من فکر میکنم مساق آیه اصولا برای اون دومیه فهمل فی قلوب همزه ایمون فی از طبعون ماتشا به همه. یعنی شما ممکن است علمای مسیحی به بعضی از آیات نگاه بکنید برای فکنه مسلمان ها برای انحراف و برگرداندن آنها، مثلا بگیم خدا جسم بگیم خدایی که میخواد جسمو شه ایسا مسیحه مثلا نبا مسیح اما خب هیچ مسیحی با الله ها احر تنسک اون اونی که دیگه صریعی در اینکه سلاسه نیست هستان آور این اونی که به ذهن ما میاد آیه اولا نباید مجمل باشه خدا آیه باید واضح باشه این که آیه آمدن در طول چارده هست در پونزه تا معنا برای محکم و متشابه پیدا کردن ظاهرا نباید درست باشه اصلا با روح آینه نمیخوره با خطاب نمیخوره با شم نزول نمیخوره برای نمیخور. نمیخوره شم نزول میکنم برای نمیخوره که اشاره مناظره از از است و نموغت است و حقیقت تورات و بعدم حقیقت کتاب بعد ها میاد به مسئله فتحال و نظر نامای آیی مباهیرات دیگه ما الیفلام با رو مباهیر اون مشکل نداره اون باید یک تفسیر دیگری باید برش بگیم میدونم میفهمم مثلا ممکنه یک نحوه کلامی بوده در اون زمان بعضی ها به کار میگوزن ممکنه یا مثلا یک نوع کلام برای انبیا و اولیا و کلمات مقدسه یه الفاظ به بکار برده میشه چون الان خیلی واضح نیست اصلا نهره برخورد خود مسلمان های اولیه با رسول الله با این آیه چیه چه چی در اینجا چه در جدیه ما در خواسته شوارم همین بحثوما سر کردیم این یک ابهامی از این جهت وجود داره احتمالا یک تبکسی خاصیه اینکه این احتمالا شما اصلا از مقوله به اصطلاح به آیا از مقوله استعمال خارج مثل مثلا ضربه فعل و مازن میمونه. ضربه رو شما استعمال نکردید. یعنی بحثا تو اصولم تو بحث اصول. اینا رو ما استعمال نمیدیم چون لفظی نیست که ورش شده بر معنای در معنا به کار برده شده. اینی که شما می اجمال اجمال و قد غیر اجمال از مواقع دلالته ممکن بوده یک نحوه گفتاری بوده یک نحوه خاصی بود خب بعضی از مستشقین جدید پیتروشویسکی که کومونیست است مثلا این احتمال داده این الفلامی به ازهابی نسخ قرآن اضافه شده ص ح کنایه از ابی لام کنایه از علی مثلا مین کنایه از مثلا کذا این اشاره ببین باشه که این در مصحف این سه نفر این بوده یا چهار نفر یا چند که خب خیلی بعیده نمون رو حالا یکی از احتمال در کتاب حساب در اینجور بحثه در کتاب اسلام ز ایران احتمال اینو می‌ده که اصلا این عبارت از اختلاف نسخ یعنی اختلاف مصاحف باشه که این سوره با این ترتیب در کلا مصحف بوده که اصلا مثلا این کار بعد از فیهن برشده اینطور نبوده که در این نوضوع قرآن باشه اصلا اصلا یک نفر روسی کمونیست در از شعبی این فقط به زد الان به این قسمت راجع به علاقلامی این در تفسیر جلاله هر جه این حروف مقتل هست اینکه الله ها الان به مراده هیچی نبیه تفسیر نمیکن الله ها الان به مراده این صاحب همین عبارت رو تنوش این ظاهرم چون اختصاص به را برای مسلمانان را برمشه. برای مسیحیان و برای مسلمانان برای مقابل نهضت باشه معنای که نداره احتمالاً یک نوع رمزی بوده که کلامی بوده فر مثلا که در بعضی از به استفاده شده چون میگم ما یک مطلبی که داریم بیشتر در با شواهد تاریخی با مجموعه شواهد تاریخی خیلی مطلب واضح روشنی دست ما نمیاد اجمالا از رموز خاصی بوده که در بعد از خطوبه مقدسه به کار برده میشه. بعدی نداره اینا سه نداره. به در به استثنای اهل اسلامین آیا آیات در مناظره با اهل مسیحیت. آیه 60 و اونجا تو هشتار دیگه. که چرا تو یه که چند از اونجا اتفاق تا آیه داخل اونجا نازل بشه بعض از آیات گفتن از گفتن کاملا در یک با نازل تا هشتاد رو گفتن در همین واقعه نازل شده بفهمید از آی از گفته شده از اول آیه بعضی اصلا قائلا که تا آخر آیه کلا در این واقعه اما نه تا آخر شواهد معین آیات بعدشه اشکال انكم امم باشه به هر حال ظاهر هو الذي انزل عليه بقاينك عبدشان كه ظاهر به دست نه ببینید محکم متشابه یک جا کل قرآن محکمه یک جا کل قرآن متشابهه یک جا آمده شده که قرآن به دو مجموعه است مجموعه متشابه مجموعه محکم مجموعه داره و اخر متشابه ها یعنی اخر یعنی شما در این مجموعه در بعض از آیات خوال لبیه انزل اینجا کتاب رو کلن در نظر گرفت این آیات دو گروه میشن یک آیاتی که هست محکم هم میشه این آیاد نه آیه واحد مجمله مجموع آیاد تشابه دارن این شبیه اونه یعنی این رو باید با مشابهش همسانسازی بکنه همگونسازی به اصطلاح مراده از تشابه تشابه یعنی همگون قرآن ها همگروه. این باید در همگروه ببینید همه قرآن ببینید همه قرآن در جایی که آمده اینجور آمده الله نزل اینجا انزله داره اونجا نزله برابر مشفور گفته شده نزله تدریجی هم شامل میشه نزل احسن الحدیث حدیث یعنی سخن یعنی گفتار بعد متشابه المتشابه ما اگر آیه اینجور معنا بکنیم خداوند احسن الحدیث این کلمات رسول الله که آیات بر اساس احسن و حدیث هست اما مجموعه اینها هم در یک رابطی هم دارند اینجور نیست که سال پنجوب، یه چیز بیار سالی ششم، یه چیز بیار سال هشتوم، دهوم، دوازدهوم یه اون مجموعه که در نظر میگیره تمام این آیات در 23 سال با هم در رابطه همسانه کتابا متشابه هم <متشابه> من ابتقاء الفتن و ابتقاء تربیل یعنی این یعنی تشکنیم دوستی که شبیه باطله این که شبیه حبل بران. نه نه نه یعنی ایان میان این میان ظاهرش اینطوره طوره در این که این آیه مجمله میان به این آیه تمسطک میکنن اون مجموعه آیاتو نمیبینن این ظاهری که من میفهمم این سمه علا تقدیر از این مقلب حالا فرس کنیم چون انصافم در ذهنیت علماشات بعض از رواستم هم همین طوره یک آیه پی نفس محکمه یک آیه پی نفس متشابه الان ذهنی نمیره دیگه. اون ذهنی که ما داریم اینه علا تقدیر قبول این مطلب انصافا اگر ما قبول کنیم بعضی از آیات مبارکه ابهام داره و اجمال داره بلا اشکال بلا اشغال قطعاً و یقیناً ما اگر در تفسیر باشه در اخلاق باشه در معارف باشه در تاریخ باشه در هر قسمتی از آیات اونوارکه این طبیعیه که هیچ فقیه که آدم یا باید کاریم به مسیحیت که نداریم. حق نداره به کلام مجمل تنصف بکنه. وقتا اگر بنات تنصفی بشه باید شواهدی پیدا بشه. اگر پرد کردیم مثلا نموان مثال ما آیاتی که در خیمزیر داریم لحمه اما مثلا در مجموعه روایاتی که ما داریم لحم خنزیرم مانع صلات جمعی عزای بدنش هم مانع صلات لحمش نجس جمعی عزای بدنش هم نجس خرید و فروش لحم خنزیرم جایز جمعی عزای بدنش اینها رو اگر ما قائل با خارج از ظاهر کتاب ولی ما هم صدیحا همیشه میگیم ظاهر کتاب این قسمت رو میگیبه ما به برکت بقیه روایات و بقیه شواهد خارجی این رو تأمین می‌کنی و این یک مطلبی نیست که از تا ما برطرف زن هم... نبود در مراد فقهای ما حتی در بحسب ظاهر فقهای اهل سنت هم همین طوره هم. هم که این طور نیست که فقط به یک آیه تمسک بکنن اونا ممکن از به واسه اون روایت کم دارن بیش از اندازه به آیه تمسک کنن راست این درست این مطلب درست ما اگر ظاهر یک روایت داریم که زن ارثین بر ظاهر آیه میشازه این طور نیست که مثلا بکیم بیاییم روایات رو طرح بکنیم چون این روایات با ظاهرهای انبارکه نمی سازه محسوسا در فقر شیعه که که از مغادر مهمش قبول اصحاب و تلقیه و قبول اصحاب درش است. این مطلب به این نیست که ما بیان این اصولی ها بیانیم زواهر آیات رو قبول بکنن و در مقابل وجود روایات بسیاری از هر البته خوب گاهی پیدا میشه که علما شیعه کسی این حرف رو بزنه مسئله حبه رو خوب ایده منکرام میگم با اطلاقات کتاب نمیسازه در همین کتاب دارالم اسلام با اینکه برطرفدار شیعیه تا شیعه اسماعیلی ایشون حبه رو منکر میشه میگه حبه با ظاهر کتاب نمیسازه اینکه مقداری از اموال رو خصوص سر بزرگ بدین با ظاهر کتاب نمیسازه اگر مراد این باشه مراد اخبایی ها که ما بیاییم به زواهر کتاب تمسط رو کنیم و مجموعه روایت خصوص خصوصا روایاتی که ما شواهد بر وصول به اونها داریم مثل تلقیه و قبول شده مسادر اصلی از خواب هستن. اگر مراد این باشه خب هستن راستن همین الان شما سندن اسلام ما این سما با شیعه که مثلا ظواهر کتاب رو بر مجموعه روایات و تطابق و اجماع محدد. پس دیگه نیست همه ظواهر. خب قطعا این راه باطله این اصلا مراد ما نیست. و اصولا ما اول کار یک تاسیس اصل کردیم. هر کلامی ظاهرش حجت به شرطی که به حد ظهور و غلالی برسه. حالا میخواد ظاهره کتاب باشه یا ظاهر روایت باشه یا ظاهر باشه. پس این بعد که اولا آیات متشابه ها محکم ربطی به ما نحن و فیل نذارم الان تقدیر تن از به ذهن آن که ربطی و قبول این مطلب الان تقدیر تن از ظل باز از جذریه داخل در ما بعضی از مذاهب فاصله بعضی از علمایی که از ما نیستم به علما بودن با وجود روایات با وجود فتوای سریح اصحاب معذالت برگشتن به گفتن ظاهر آیه این است و ما تمام اینا رو افتاد بکنیم این مطلب درسته مراد اخواری ها اگه این مطلب باشه ما هم قبول داریم و اصولاً نه ارد کردیم بعد از گذشته چهارده قرنه زمان ما خود زمان صحابه بعد از رسول الله حدود تمسک با قرآن تا حد زیادی واضح بود اینطور طور نبود که ابهام داشته باشه مثلا ورقواه از این النسان اللہ تیل آیتون فرای علیه این جناحه نه نه معنی خیابونه ظاهر خیابونه خب این معنیش اینه که مثلا پیرزن هایی که اومده چه تمام لباساشون تن بکنه خب این کوچه های و هیچ کسی همچی احتمالی عبد هم نداره در حالا ممکن است به خاطر کلمه وضع باشه یا زنه چون میگن در لغت عرب اگر لباس رو بردار میگن نزع الصبر اگر لباس زیر باشه نزع الصبر فرق بزن بین وضع اونرد حرف بدی نیست اشوان خب آیا میتونیم ما تمثل بکنیم به ظاهر این آیا بگیم مثلا خانم که پیره میتونیم تمام لباس ها رو دونست یا به ظاهر آیا که اینه قطعا اینجور نیست یا حالا همین قدیهه و اونرد بوده یا قرآن خارجی بوده قطعا به ذهن کسی خطور نمی کرده ولذا در روایات ما هم دو تا وارد شده یکی اینکه خصوص چادر رو بردارن که جلباب باشه اصلا تفسیه شده الجلباب وحده یه لباسی دیگه داره اونا سهر دو سهر اصلا. چادر و روسری یعنی همچه احتمالی که مثلا خانه های پیروتن تمام لباس این این چیزی امکان یعنی نیست اینطور نیست که بگیم عرفاز قرآن یک جوری معنا بکنیم که مثلا فرصان دفته یه چهارده غرم فهمیده نشده بیدم اخیران یک یه ادعا کرده که مثلا معلوم میشه و اصلا جهانگردی در قرآن هم برای خانم‌ها آموده این باری در سوری تحریم هست که این تلقه کنه انجام دلالله از واجن خیلی منکن مسلمان سائه سائح ها سائه که این سیاحت یعنی سیاحت جهانگردی گرفت خب این اگه چین معنی بود خب در درزیه اول خود نسا و نبی پیاده میکرده بود در درزیه اول حضرت زهران جامون سایه ها در اینجا جا مراد زنهایی هستند که از بلاد شرق مهاجرت هم به دارو بستا. این مراد هجرت خیلی نه جانگرد یه صلاح این سایه ها که در اونجا داره مراد هجرت از دارو شهر زنهایی که هنگاه شوهرانشون یا پدرشون یا هاشون از مناطقی که هنوز مشرف بودن هجرت میکردن به دارون ایمان میکردن ماخان... علایه شکل ما کار علا این طور نیست که همه سطح دو دواه های کتاب از قبیده چنده بخش به شد برای بخشیم شد فرقا این بحث تمام بشه بریم این بحث حجت اول احضایت اینشالله